کتاب افسانه های ملل نویسنده محمد مصطفی نژاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده الهی اصلانی سلام و ادب به شنوندگان کانال تلگرامی زارفزان این داستان خانه در کفش. در نزدیکی کوهی که بیشتر شبیه به یک قلعه بزرگ بود در میان جنگل پر از درختان کاج کنار دریاچه پر از ماهی های رنگارنگ زنی به نام مگدا زندگی میکرد که صاحب یازده فرزند بود اونها درون یک کفش بسیار قولاسا که به بزرگی یک خونه بود زندگی می کردن. زندگی برای خانواده دوازده نفر سخت بود اونها با کار و تلاش و همکاری با هم مشکلات رو حل می کردن مگده و بچه ها هم بودند و به خوبی از هم مراقبت می کردن. از همون بچگی وقتی یکی از بچه ها اشتباهی میکرد، مگدا همه برادرها و خواهرها رو با هم تنبیه میکرد و البته وقتی هم کسی کار خوبی انجام میداد، مگدا باز هم همه اونها رو با هم تشویق میکرد. به همین خاطر بچه ها یاد گرفته بودن که اشتباه یا موفقیت اونها در زندگی به همه اعضای خانواده ربط داره. پس همیشه مواظب بودن کسی کاری اشتباهی انجام نده چون که اگر یکی اشتباه میکرد همه تنبیه میشدن به همین دلیل برای موفقیت در کارها به هم کمک میکردند و به مشکلات هم اهمیت میدادند. هر یک از بچه ها در کاری ماهر شده بود مثلا توماس که پسر بزرگ بود و بازوهای قدرتمند داشت در بریدن درختان خشک با تبر و جمع کردن هیزم مهارت داشت آندریاس در شکار خیلی ماهر بود و آرمن هم در بالا رفتن از درختها و کندن میوه مهارت داشت دخترها هم در ماهگیری آشپزی نظافت و خیاطی مهارت داشتند دخترها همچنین تیراندازهای ماهری بودند سالها میگذشت و بچه ها کم کم داشتن بزرگ و بزرگتر می شدند. یک شب که همه اعضای خانواده دور هم جمع شده بودند و داشتن با شادی در کنار هم شام می خوردن توماس از مگدا در مورد پدرشون پرسید. مگدا از این پرسش خیلی غمگین شد و چیزی نگفت. اما بچه همه با هم اصرار کردند داستان پدرشون رو برای اونها تعریف کرد مگدا پدر شما مرد شجاع و مهربونی بود اون در نجاری خیلی ماهر بود همه های روستایی که ما قبلا توش زندگی می کردیم رو پدرتون ساخته بود ما در کنار هم خوشحال بودیم تا اینکه یک روز صدای وحشتناکی از سمت کوه شنیدیم وقتی همه اهالی روستا با هم بیرون اومدیم، دیدیم که یک قول خشمگین با گرز سنگی بزرگی داره به سمت روستا نزدیک میشه و سر راهش همه چیز رو نابود میکنه. وقتی قول به روستا رسید، به خونه ها نگاهی کرد و با قرور گفت این خونه ها خیلی قشنگن. چه کسی اونا رو ساخته؟ اما هیچ کس حرف زدن رو نداشت. قول دوباره با عصبانیت فریاد زد. همینطور که گرزشو بالا بر تا خونه ها رو خراب کنه، پدر شجاع شما جلو رفت و گفت صبر کن من این خونه ها رو ساختم. من یه نجارم. قول بعد از نگاه عصبانی به پدرتون خنده ترسناکی کرد و گفت هیچکس توی این دنیا حق نداره به غیر از من خونه زیبایی داشته باشه. باید برای من کار کنی و قلعه بزرگ من رو با چوبها تزئین کنی. بعد گرزش رو بلند کرد و همه خونه های رو نابود کرد. همیه اهل روستا ها به فرار گذاشتن. اما قول هم پدرتون رو گرفت و با خودش برد. من به دنبال قول دویدم و تا اینجا یه جنگل دنبال اون اومدم. اما اون خیلی زود دور شد و من گمش کردم. وقتی که قول داشت دور میشد، یکی از کفشاش از پاش در اومد و اون رو جا گذاشت. اون کفش همین خونه ی که ما الان توش زندگی می کنیم. بچه ها خیلی غمگین بودند و با تعجب به هم نگاه می کردن. مگدا تا اون زمان به اونها گفته بود که پدرشون به مسافرت رفته و حقیقت ماجرا رو بهشون نگفته بود. آندریاس پرسید آیا می دونی خونه اون قول کجاست؟ ما باید پدر رو نجات بدیم. مگدا میدونست که اون قور خیلی خطرناکه و نمیخواست بچه‌هاش به خطر بیفتن گفت نه دیگه درباره این ماجرا سوالی نکنیم بچه‌ها به فکر فرو رفتند و تا صبح نخوابیدن اونها می خونه یا قول رو پیدا کنند و پدرشون رو نجات بدن چند روز بدون این که به مگدا حرفی بزنند با هم درباره این اتفاق مشورت کردند و در نهایت تصمیم گرفتن که برای پیدا کردن پدرشون همه جا رو بگردن اما باید به کجا میرفتند؟ از کجا باید راه پیدا می کردن؟ نمی نمیدونستند. تا اینکه یکی از دخترها به اسم روزامون که خیلی باهوش بود گفت همینطور که فهمیدید کفشی که ما توش زندگی میکنیم متعلق به اون قوله یعنی اون از اینجا رد شده و جهت کفش ما رو احتمالا به خونه قول میرسونه ما باید دنبال رد پای قول توی جنگل بگردیم فکر خوبی بود امید بچه ها بیشتر شده بود و اونها روزاموند رو با خوشحالی بغل کردند. توماس هم با ایده اون موافقت کرد بنابراین همون شب یواشکی وسایل مورد نیازشون رو برداشتند و روز بعد به راه افتادند قبل از اینکه خونه رو ترک کنند توماس به برادرها گفت تا شمشیرها و تبرها و تیر و کمانهایی که قبلا ساخته بودند و حسابی با اونها تمرین کرده بودند و همراه خودشون بیارن. برادرها و خواهرهای شجاع با هم شروع به گشتن کردند. آرمن یکی از برادرها که در بالا رفتن از درختان ماهر بود به بالای بلندترین درخت جنگل رفت تا بتونه از بالا ردپای پای اون قول رو پیدا کنه. وقتی خوب دقت کرد مستطیلهای رو در جنگل دید که به اندازه خونه خودشون بودن به خاطر اینکه گیاه و سبزه توی اونها رشد نکرده بود از بقیه کف جنگل جدا شده بودند آرمن حدس زد که اونها باید همون ردپای قول باشن اون درست حد زده بود اونها بالاخره موفق شدند یکی از ردپاها رو پیدا کنن همینطور رد بیشتری را پیدا کردند و به دنبال اونها راف دادند. بعد از یکی دو روز پیاده روی، رد پای قول اونها رو به خارج از جنگل و کوهی شبیه به قلعه بود کشندند. اونها تا حالا از خودشون نپرسیده بودند که چرا این کوه شبیه به قلعه است؟ آیا ممکن بود که اون کوه همون خونه قول باشه؟ به آهستگی و ویستر و صدا از کوه بالا رفتند و بعد از چند ساعت کوه اون به دروازه های بزرگ رسیدن که بالای کوه ساخته شده بود. دروازه ها از چوب ای رنگی ساخته شده و بسیار زیبا بودن. اونها با تعجب به هم نگاه کردند و فهمیدن که راه رو درست اومدند و این کوه همون خونه قوله و این در زیبا هم احتمالاً پدرشون ساخته. سلاهاشون رو آماده کردند و از کنار حفره کوچکی که کنار در بود وارد قلعه شدند. داخل قلعه خیلی قشنگ و رنگ و رنگ بود و همه دیوارها و ها رو با چوبهای رنگ و رنگ به زیبایی تزین کرده بودند. اونها به آرامی از حوض بزرگ وسط حیات رد شدند و به ورودی خونی قول رسیدند. بعد بی سر و صدا وارد خونه قول شدند و قول رو دیدن که روی تخت بزرگ چوبی خود نشسته. قول خطرناک زنجیر بلندی توی دستاش گرفته بود و داشت به خواب میرفت. اونها می که قول خیلی قدرتمنده پس منتظر شدن قول خوابش ببره بعد برادرها با شمشیرهاشون دور قول رو گرفتند و خواهرها هم که در تیراندازی ماهر بودن آماده تیراندازی شدن آندریاس قبل از همه زنجیری که توی دستای قول بود رو یه واشکی دور پایون پیچید. با علامت توماس به قول حمله کردند و هر چقدر که تونستن بهش ضربه زدن. قول سراسیمه از تخت پرید و از درد به خودش می پیچید. همینطور که میخواست از تخت بزرگش پایین به و گرزش رو برداره پاهاش به زنجیر گیر کرد و با سر از تخت افتاد. سرش به گوشه صندلی چوبی کنار تخت خورد و قول مارد بچه ها با خوشحالی و قرور فریاد زدند و هم دیگر رو بقل کردند بعدش به دنبال پدرشون شروع به گشتن غلعه کردند اونها زنجیر رو دنبال کردند و به اتاق بزرگی رسیدند که پر از وسایل چوبی بود و در انتهای اتاق پدرشون رو دیدند که زنجیر به پاهاش وصل بود و داشت کار میکرد. بچه ها با خوشحالی به سمت پدرشون دویدند و همدیگر رو با شادی بقل کردند و بوسیدند. بعد زنجیر رو شکستند و همگی با هم به خونه برگشتند. مکدا وقتی بچه و همسرش رو با هم دید از خوشحالی فریاد زد و همه اونها رو بقل کرد. بعد با کمک پدرشون یه روستای کوچی که پر از خونه های زیبا ساختند و با شادی در کنار هم زندگی کردند راستی؟ بقیه مردم روستا کجا رفته بودند؟ کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی نقط سلاش مهران دوستی تی نقطه ام ای س نشانی وبلاگ ما ام ای الFA نقط مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستستانی